سلام به همه شما شنونده های قصه دوست و خیال پرداز خوش اومدین به یک سفر شنیدنی سفری به دل افسانه های دور قصه هایی که نسل هاست تو گوش شباز زمزمه شدن و مثل گنجی مخفی سینه به سینه به ما رسیدن قراره با هم بریم به دل سرزمین قصه های مردم ترکیه جایی که پری پا دارند، پادشاه ها دلشون پر رویاست و جادو یه راز قدیمیه که هنوزم توی بادهای کوه و صدای رودخونه ها پنهونه قصه ای که براتون دارم اسمش هست پادشاه و چهل پری اگه آماده چشماتون چشماتونو ببندین و بذارین صدا دستاتونو بگیره و ببرتون به جایی که قصه شروع میشه یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود در قدیم و روزگارای دور دور تو روزگار پریا شاهزاده خانومی بود به زیبایی ماه شب چهارده کمر باریک مثل درخت صرف با چشمانی به سیاهی زغال و گیسوانی به سیاهی شبق عبروش شکل کمون بود و تخم چشماش مثل نوک تیرای رها شده از کمان تو قصر پادشاه باقی بود و میون باغ حوض آبی با فواره در وسطش دختر تمام روز رو اونجا مینشست و با دوخت و دوز سرش رو گرم میکرد یه روز دختر انگشترش رو روی میز خیاطیش گذاشت و تو همون لحظه کبوتر کوچیکی از راه رسید و حلقه رو به منقار گرفت و به پرواز در اومد کبوتر کوچیک اونقدر زیبا بود که دختر با یک نگاه آشقش شد روز بعد علنگوش از دستش درآورد و گذاشت دوباره روی میز چرخیاتی کبوتر فورا خودش رو رسوند و اون رو هم برد عشق کبوتر خواب و خوراک رو از دختر گرفته بود و خدا میدونه که به چه مصیبتی اون شب رو سپری کرد به امید این که دوباره بتونه کبوتر رو ببینه روز سوم میز خیاطیش رو آورد و دستمال توریش رو روی اون گذاشت و خودشم در نزدیکی میز نشست و منتظر کبوتر موند اونقدر منتظر موند و موند تا اینکه بیا و ببین ناگهان کبوتر پیش روش ظاهر شد دستمال رو قاپید و پرواز کرد دختر که دیگه نای بلند شدن نداشت زار زار گریه کرد و به سمت قص رفت از فرت غم و اندوه خودش رو به در و دیوار میکوبند خدمتکار پیرش دوون دوون اومد سمتش رو فریاد کشید آخه بانوی من چرا اینطوری گریه میکنی چی شما رو اینطوری آزرده؟ شهزاد خانوم گفت: من بیمارم، قلب من بیماره و با شدت بیشتری به گریه و زاریش ادامه داد. خدمتکار پیر از اینکه بخواد این خبر رو به پادشاه بده خیلی میترسید چون بانوش دختر یکی دونه پادشاه بود. اما وقتی دید که چطوری دختر روز به روز رنگ پریده تر و نزارتر میشه و گریه و زاریش تمومی نداره دل به دریا زد و پیش پادشاه رفت و غم و قصه دختر رو باهاش در میون گذاشت پادشاه که ترس برش داشته بود رفت پیش دخترش و چند تا طبیب و حکیم حاضق رو هم به دنبال خودش بر سر بالین دخترش برد اما هیچ کدوم دوای درد دختر رو پیدا نکردن. تا اینکه فردای اون روز وزیر به پادشاه گفت قربانت بگردم. از دست این حکیمان و طبیبان که کاری بر نمیاد، تنها طبیبی که از پس درمان دخترتون برمیاد همین الان یه جایی پنهون شده. وزیر، به پادشاه پیشنهاد کرد که یه استخر بزرگی بسازن که آبش هر دردی رو شفا بده. اما قرار بر این باشه که هر کسی که بیاد و تو این آب شنا بکنه باید داستان زندگیشم تعریف بکنه. پس پادشاه دستور ساختن استخر رو داد و به همه مردم شهر اعلام کرد که آب این استخر تاس رو مودار میکنه کر رو شنوا میکنه کور رو بینا میکنه و پای چلاغ رو علاج میکنه مردم گروه گروه و دسته دسته اومدن تا به طور رایگان توی این استخر شنا کنند و فقط در ازاش هر کدوم قبل از برگشتن به خونه داستان زندگی و چطوری بیمار شدنشون رو تعریف کنند خب تا اینجا یه رو داشته باشین که یه کبوتری هر روز میومد و حلقه و دستبند و دستمال توریه دختر پادشاه رو برد و دختر پادشاه عاشق اون کبوتر شد و از عشق زیادش تو بستر بیماری افتاد حالا بیاین بشنوین از پسر کل تاسی که با مادر علیلش تو همون شهر زندگی میکرد. و آوازه استخر جادویی پادشاه هم به گوشش رسیده بود پسر به مادرش گفت مادر بیا ما هم بریم یه وقت دیدی هر دوتاییمون شفا گرفتیم پیرزن با آهاناله گفت با این وضع پاهام چطور میتونم بیام؟ پسر کلتاسش جواب داد حالا یه کاریش میکنیم و مادرش رو کول کرد و به طرف استخر همایونی به راه افتاد رفتند و رفتند و از دشتهایی هموار در کنار رودخانه خروشان گذر کردند تا اینکه که آقبت پسر از نفس افتاد و مادر رو, رو روی زمین گذاشت. تو همون لحظه خروسی با کوزه بزرگ آب بر پشتش کنار اونها روی زمین فرود اومد و به سرعت از اونا دور شد. جوون که کنجکاف شده بود بدون چرا خروس این همه عجله داره و اون آب رو داره کجا میبره دنبال خروس راه افتاد. خروس رفت و رفت تا به قلعه بزرگی رسید. پای دیوار قلعه گودال کوچیکی بود که توی اون آب قلقل می کرد. جوان بازم به تعقیب خروس ادامه داد و خودش رو با فشار و مشقت زیاد، توی گودال جا داد و نگاهی به دور و اطرافش انداخت. اونور دیوار قصری دید به قدری با شکوه که چشماش چار تا شد و دهنش از تعجب موند پای هیچ بنی آدمی انگار به اونجا نرسیده بود. جوون تموم گوشه و کنارای قصر رو زیر پا گذاشت. از این اتاق به اون اتاق. از رخکن به اتاق زیر شیروانی هر جا رو که بود یک نفس تی کرد و در دلش به جلال و جبروت قصر آفرین گفت تا اینکه خستگی اونو از پا در آورد با خودش گفت چی می شد اگه توی این قصر چشمن به یه موجود زنده می و برای اینکه بتونه همه رو به پاد رفت توی انبار مهمات بزرگ قایم شد تا از اونجا بتونه با خیال راحت رفت و آمد این اونو زیر نظر بگیره بعد از کمی انتظار سه تا کبوتر روی لبه پنجره فرود اومدن و پس از اینکه چند لحظه‌ای به خودشون لرزیدن تبدیل شدن به سه تا دختر یکی زیباتر از اون یکی طوری که جوون نمیدونست، اول اصلا به کدومشون نگاه کنه سه تا دختر فریاد کشیدن، آه خدایا دیر کردیم دیر کردیم سرورمون به زودی از راه میرسه و هنوز هیچی آماده نیست بعد یکی از اونها جارویی تو دستش گرفت و همه جا رو نظافت کرد دومی هم میز غذا رو چید و سومی هم غذاهای رنگ و وارنگ آورد و رو روی میز گذاشت. بعد هر سه تا باز دوباره شروع کردن به لرزیدن و سه تا پرنده از پنجره به بیرون پریدن. جوون کله که از گرسنگی عمونشو بریده بود با خودش فکر کرد کسی که نیست منو ببینه چرا نرم و یکی دو لغم نخورم. این بود که از مخفیگاهش دست دراز کرد و داشت دستی به سفره میرسوند که چنان زربه ای به دستش خورد که جای اون به اندازه یه بادم جون ورم کرد دست دیگه رو دراز کرد ضربه محکم تری هم نصیب اون شد جوون که از وحشت داشت به خودش میلرزید میخواست دستش رو پس بکشه که تو همون هنگام کبوتر سفیدی پرواز کنان توی اتاق فرود اومد کبوتر لرزشی به خودش داد و درجا تبدیل به مرد جوان زیباروی شد جوان زیبارو به سراغ گنجه ای رفت در اونو باز کرد و یه انگشتر، یه علنگو و یک دستمال توری از اون بیرون آورد بعد با صدای بلند گفت چه انگشتر خوش اقبالی هستی تو که اجازه یافته ای بر انگشتی به آن زیبایی بنشینی؟ چه النگوی خوش اقبالی هستی تو که اجازه یافته ای بر دستی به آن زیبایی بنشینی؟ جوون با گفتن این سخنان به گریه افتاد و اشکاش و قطر قطره با دستمال توریش پاک کرد. بعد، انگشتر و علنگو دستمال رو توی گنج برگردوند و از یکی دو غذا کمی چشید و بعد به خواب رفت. تو همه این مدت کله تاسقسته ما کاری نداشت جز اینکه بنشینه به انتظار غروب خورشید. اما ساعتی بعد جوون زیبارو از خواب بلند شد. لرزهی به خودش داد و کبوتر سفیدی شد و پرواز کنان رفت کلتاسم از مخفیگاش اومد بیرون و به محووته قصر رفت و بار دیگه از گودال پای برج قلعه به بیرون خزید بیرون قلعه مادر پیر بینوا شدید که تک و تنها نشسته و اشک میریزه اما جوون اونو آروم کرد و به اون خاطر جمی داد که به زودی روزگار مهنتشون به سر میاد. بعد پیرزنو دوباره کول کرد و راهی سخر همایونی شد. اونجا تنی به آب زدن و فوراً هم پیرزن چهار ستون بدنش سالم شد و روی دوباره ایستاد و کله جوون کله تاسم صاحب مو شد. بعد بنا کردن به تعریف کردن سرگذشتشون دختر پادشاه با شنیدن دیده ها و شنیده های جوون در آن نیمه شب انگار که جون تازهی گرفت و از بستر بیماری بلند شد و به جوون وعده داد اگه اون رو به اون برج ببره گنج زیادی در انتظارشه پس جوون با شاهزاده به اونجا رفت و دیوارهای قصر رو نشونش داد و اون رو کمک کرد که از اون گدال کوچیک بگذره بعد اون رو به اتاق کبوتران برد و انبار مهماتی رو که در اون مخفی شده بود به دختر نشون داد بعد با انبوهی جواهرالات سالم و حال با مادرش به خونه برگشت و خوش و خورم در کنار مادر پیرش به زندگی ادامه داد وقتی غروب شد سه تا کبوتر پرواز کنان به داخل اتاق اومدن همه جا رو پاک و پاکیزه کردند و میز رو از غذاهای رنگ, رنگ پر کردن و دوباره پرواز کنان از اتاق بیرون رفتن کمی بدتر کبوتر سفید بالزنان به اتاق اومد و خدا میدونه که دختر از اینکه دوباره کبوتر دلبندش رو میدید چقدر زخ کرد اما وقتی که کبوتر بار دیگه مبدل به مرد جوونی شد و به درخشندگی ماه شب چهارده بر ایستاده بود، دختر که پاک از خودش بیخود شده بود، لحظه ایم چشم از چهره تابناک جوون بر نداشت. بعدش جوون به سراغ گنج رفت و مثل عادت همیشش در اونو باز کرد و انگشتر و الانگو دستمال توری رو که مال دختر پادشاه بود بیرون آورد و با صدای بلند با خودش گفت ای انگشتر چه خورسند باید باشی تو که بر انگشتی به آن زیبایی بنشینی آه ای الانگو خوشا به حالت که در دستانی به آن زیبایی آرام میگیری.» و بعد دستمال توری رو بیرون آورد و عشقاش با اون پاک کرد قلب دختر نزدیک بود که از دیدن این منظره از جا کنده بشه. بعد دختر با انگشتش تقی به در انبار مهمات زد. مرد جوون به سوی در اومد اونو باز کرد و با دلدارش روبرو شد. جوون چنان از شدت شادی اشک میریخت که انگار گرفتار غم و اندوهی بی پایان شده. از دختر پرسید که چطور خودش رو به قصر پریان رسونده دخترم ماجرای سفرش رو براش تعریف کرد و اینکه چطور گرفتار عشق اون شده جوون گفت که اون هم از شکم مادری زمینی زاده شده اما سه ساله که بوده پریان اون رو دزدیدن و اون رو به این قصر رو و پادشاه خودشون کردن اون تمام روز در کنار اونهاست و هر روز تنها دو ساعت فرصت داره که خودش باشه اون گفت که دختر میتونه در کنارش بمونه و تمام روز رو در قصر برای خودش بگرده اما وقتی که غروب آفتاب رسید باید خودش رو جایی پنهان کنه تا چهل پری اون رو و وگرنه دختر رو زنده نمیذارن جوون قول داد که فردای اون روز قصر مادرش رو بهش نشون بده توی قصر مادرش میتونن در کمال آرامش زندگی کنن و دو ساعت از بیست و چهار ساعت رو هر روز در کنار هم باشن به این ترتیب فردای اون روز سلطان پریان دختر رو با خودش به قصر مادرش برد تا اونجا رو نشونش بده و بهش گفت وقتی رفتی اونجا به اهالی قصر بگو که به تو رحم کنن و به یاد بختیار تو رو پذیرا بشن مادرم با شنیدن اسم من درخواستت رو رد نمیکنه. پس دختر رفت و در زد. پیرزنی اومد و در رو باز کرد و با دیدن دختر و شنیدن نام پسرش زد زیر گریه و دختر رو برد به داخل خونه دختر مدتها اونجا موند و هر روز اون پرنده کوچیک به دیدنش میومد تا اینکه شاهزاده قصه ما دختری به دنیا آورد اما روح پیر زنم از اومدن پسرش به خونه و، باردار شدن و زایمان دختر خبر نداشت. یک روز پرنده کوچک اومد روی لبه پنجره نشست و گفت سلطان بانویم نونهالم حالم در چه حال است؟ دختر گفت، خطری تهدیدش نمیکنه اما بیتابانه در انتظار آمدن بختیاره، جوون آهی کشید، آخ که اگه مادرم از این وضعیت باخبر بود، بهترین اتاق قصر رو در اختیارتون میگذاشت و با گفتن این سخنان در اتاق فرود اومد، و تبدیل به همون مرد جوونی شد و همسر و فرزند کوچکش رو در آغوش گرفت اما با سپری شدن اون دو ساعت تکون کوچیکی به خودش داد و همون کبوتر کوچیک از پنجره به بیرون پرید اما مادر که سخنان پسرش رو شنیده بود از شادی در پوست خودش نمیگنجید. شتابان پیش عروسش رفت اون را در آغوش گرفت و نوازش کرد و به دلبازترین اتاق قصر برد و به میمنت و مبارکی قدم نورسیده رسیده همه جا رو آب و جارو کرد پیرزن که می دونست چهل پری بودن که پسرش رو ازش دزدیدن به فکر فرو رفت که چطوری می تونه اون رو از چنگالشون در بیاره تا اینکه که آقبت فکری به سرش رسید و به دختر گفت فردا که پسرم اومد، ترتیبی بده که از زمان قافل بشه و بیشتر اینجا بمونه. بعد از اون باقی کارا رو به من بسپار. روز بعد که پرنده از پنجره به داخل پرید، نمیدونین با چه سحنه ای روبرو شد. هیچ جای اتاق اثری از دختر نبود، جوون مسترب شد و به پشت پنجره اتاق دلباستر پرواز کرد و فریاد کشید خدای من سلطان بانوی من نونهالکمان من در چه حال است؟ و دختر گفت خطری تهدیدش نمیکنه. اما بیتابانه در انتظار آمدن بختیاره پس پرنده به داخل اتاق فرود اومد و تبدیل به مردی شد و چنان غرق گفتگو با همسرش و بازی با کودکش شد که از زمان غافل شد اما اما بشنوید از پیرزن و اینکه اون در این مدت مشغول چه کاری بوده و چه نقشه‌ای کشیده جلو در خونه درخت سرو بزرگی بود که گاه به گاه چهل تا کبوتر روی اون می نشست پیرزن به سراغ درخت رفت و همه جاشو پر از سوزنای زهرالود کرد اون شب با به پایان رسیدن مجال دو ساعته سلطان پریان چهل کبوتر که همون چهل پری نگه بام بودن به دنبال سرورشون اومدن و روی درخت صرف نشستن اما به محض نشستن سوزنای زهرالود توی پاهاشون فرو رفت و درجا نقش زمین شدن. اما تو همین بین جوون ناگهان به خودش اومد و یاد زمان افتاد. این بود که با بیرون اومدن از قصر در ساعتی به اون دیری از ترس زهر ترک شد. نگاهی به راست انداخت، نگاهی به چپ انداخت، با دیدن درخت سرف، چشمش به چهل کبوتر افتاد و حالا دیگه شادی بیحدی جای ترس و وحشتش رو گرفت اول از همه همسرش رو در آغوش گرفت و بعد سراغ مادرش رفت و, و اون رو بقل کرد حقم داشت اینجوری شادمانی کنه آخه از دست پریان رها شده بود و به این ترتیب اونها جشن و پایکوبی ترتیب دادن که حتی چهل روز بعدم به پایان نرسید. اونا به مراد دلشون رسیدن و خوردن و نوشیدن و پای کوبی کردن. امیدوارم ما هم به مراد دل خودمون برسیم و تا میخوایم بخوریم و بنوشیم و از زندگی لذت ببریم. خب اینم از قصه ما. امیدوارم از شنیدن قصه پادشاه و چهلپری لذت برده باشین. دیدین؟ گاهی عشق همون دردیه که آدما رو به فکر چاره میندازه یه درد شیرین که با اسمشه دل بجنبه را بیفته و دنبال دوا بگرده حالا نوبت شماست اگه این قصه به دلتون نشست بهم هم بگین دوست داشتین برای کی بفرستینش؟ یه نفر که دلش پریپسنده. پسنده؟ یا کسی که شاید الان دنبال چاره است؟ سری بفرستش؟ منتظرم توی کامنت ها برام بنویسین بدرود سفر به دنیای پر رمز و راز ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی